بسم الله الرحمن الرحیم قاسیم تلک آیات الكتاب المبين بنام خداوند بخشنده یه مهربان پا سین می این آیات کتاب مبین لعلک باخع النفسک گویی میخواهی جان خود را از شدت اندوه از دافت دهی بخاطر اینکه که آنها ایمان نمی آبراند این شکل نزل علیه من السماء آیتا فظلت اگر ما اراده کنیم از آسمان بر آنها آجه نازل می کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد است. و ما هر ذکر تازه از سوی خداوند رحمان برای آنها بیا از آن اعراض می کنند. ما كانوا به آنها تکزیب کردند اما به اخبار آن چرا به استحظام میگرفتند به آنان میرسد و از مجازاتش با خبر خواهند شد. اولم الى الارض كم انبتنا فيها من كل كريم؟ آیا آنها الى زمین كل نگاه نکردند چه اندازه در آن از انبای گیاهان آفریدند ان في ذلك لاایه وما كان مؤمنین در این نشانه ای بر وجود خدا ولی اکثر آنها هرگز مؤمن نبودند و این ربک لهو العزیز الرحیم با جقینا پربارکار تو عثیث و رحیم و اید ربک موسا انکسی القوم الظالمین بخاطر بیا بر هنگامی که پروردگارش موسا را ندا داد که بس راکه انت ستم قوم ستم کرد براون قوم سرعون قوم فرعون آیا از خدا نمی ترسند؟ موسا عرض کرد پروارکارا من ازان دین دارم که مرا تقدیب کنند و یضیق قدری و لا ینطلق لسانی فأغسل اله هارون و سینه می شود و قدر کافی گویا نیست و برادرم هارون نیز رسالت ده تا مرا یادی کنند و ع یا آنها به اعتقاد خودشان بر من گناهی دارند میترسم مرا و قات درسانند. حال کل این فرمود نیست شما هر دو به آجاس ما بروید ما با شما هستیم. با سخنان تن را می شنبید سراغ فرعون بروید و بگوید ما فرستادی پروردگار جهانیان سید ان بنی اسرائیل بنی اسرائیل را با قال الم ن ربيك لنا وليدا ولبتنا من امورك سميع آیا ما در کودکی در میان خود پرورش ندادیم بسالهایی از عمرت سال در میان ما نبودی وفعلت فعلت و فعلت فعلت من الكاترين. با سرانجام آن کارت را انجام دادی و یک نفر از ما را کشتی و تو از کافران بودی موسا گفت من آن کار را انجام دادم در حالی که از بی بودم حكم لمن بابا آن هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم با پرباقور من به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد و تلک نعمت تغنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل آیا این منتیست که تو بر من می گذاری که بنی اسرائیل را بردهی خود ساختی قال فرعون و ما رب العالمین فرعون عالمیان قال رَبُّ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِن كُنْتُم مُوکِنِينَ موسا گافت پر برگار آسمان ها و زمین و آنچمیان این دوست اگر احر یقین استید قَالَ لِمَن حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ فران به اصلافیانش او آیا نمیشنوید این مرد چه میگوید عکرب وعدقومول اوولین مساگاه پر برگال شما و پر برگ شما قال این رسولكم الذي اوزییل ایلی لمجنون گ در اون که به شما فرستاده شده دیوانه قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون مصاقف وبرواد قمر مشرق ومغرب وان شي در میان این دو میباشند اگر شما عقل و اندیشه خود را بکار کار نمی گرفتید قال <سؤال> الا اتخذت الهن غيري لا من المسجونين خشمگین شد و گاه اگر معبوری غیر از من برگزینی تو را از زندانیان قرار خواهم داد موسا گفت حتی اگر نشانه یه آشکاری بر گرفت سالالتم و تو بیاورم به بین این گ؟ گفت اگر راست سنی آن را بیاور. در این هنگام موسا عصای خود را افگند و مور عزیم و آخش شد و و دست خود را در گریبان پروبار و بیرون آباد در برابر بینندگان سفید و روشن بود فرام به گروهی که اطراف او بودند گفت این تاخر آگاه و ماخری. جوری و من تأمون؟ او آضگو او میخواهد شما را از سرزمینتان با سهرش بیرون کند. شما چه نظر می دهید؟ او و و المدائن گفتند او و برادرش را ده و به تمام شعرها مع اموران را برای بسیج اعظام کن یتو کذ کل تحارنا تو هر صاحره ماطری را نفس تو آورد بدون اشحره لمیقات یوم معلوم سرنجون صاحران برای بعدگاه روز معینی جمع آوری شده. وقیل للناس هل انتم مجتمعون بعد مردم گفته شد آیا شما نیز در این اجتماع می کنید؟ لعلنا نتبع السحرات این کاموهم الغالبين تو اگر ساهران فیروز شوند ما از آنان پیروی کنیم فلما جا قالوا العون لنا ان كنا نحن هنگامی که ساهران آمدند و فرعون گفتند آیا اگر پیروز شویم، تا داشت مهمی خواهیم داشت گفت آره با شما پر این صورت اس مقربان خافيتون قال لهم موسى: ما انتم الملكون؟ ضافت ان چرا ميخواهيد بيعقنيد؟ بيعقنيد؟ فالقوا عذابهم وقالوا بعزة فرعون إن لا نحن الغالبون آنها تنبهاو با اصاهاوی خود را افکندند و گفتند با عزت فرعون قطعا پیروزی فا القا موسا عطاه فا ما یعکون سپس موسا اصاوی را افکند نوگهان تمام و ساوی آنها را بلعید و القیت زحرات فورا همگی فوراً بر سجده افتادند قول امن بما رب العالمین گفتند با به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم رب موسی و هارون پروردگار موسی و هارون قَالَ أَمَنْتُمْ لَوْ قَبْلَ أَن آتِيَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعُ عَنَّكُمْ أَنْ أُنْزِلَكُمْ وَأَرْزُقَكُمْ مِنْ خِلَاتٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فَرَأَيْتُمْ كَأَنَّهُ أَوْ يَبْأُ إِيمَانٌ أَوْرْدِيد پیش بیشدان که به شما اجازه دهم مسلما او بزارد و استاد شماست که به شما سهر آموخته اما به خواهید دانست که دستها و پاهای شما را به طور مختلف قطع می کنم و همه شما را به دار می آبیشم گفتند مهم نیست ما به سوی پروردگاه من باز می گردیم. ما امیدواریم پروردگاه من خطا ما را ببخشد که ما نخستین ایمان آبرندگان بودیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ماذا موسى بحجة رستا دیم كَبَنْدَقَانِ مَرَا شَبَوْنَا اَفْنَيْسَ كُوْتِهِ فَأَنْهَا شَمَوْرَا تَعْقِيبَ خَاهَنْ كَعَدْ فَأَغْسَلَتِ الْعَوْمُ فِي الْمَدَائِنِ فران از این موجه آگاه شد آفر و معمولان به شعرها فرستاد تا نیرو جمع کنند. اینها ها اولئی لجزمت و کاف این ها کروک اندکند. و این هم لنا لغائبون و این ها ما را بخش وَإِنَّ لَدَيْهِنَّ حَادِينَ وَمَا ما همگی آماده ی پیکاری مِنْ جَنَّاتٍ وَعُلُودِ وَلِمَا ما آنها یعنی تراونیان را از بافتها و چشمها پیرون کردیم وَالْعُزُوْمُ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ از گنج ها به خواست های مجلن آوی این چونین کردیم و برین اسرائیل را با آنها صاحب فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ موسى آنها یعنی فرعونیان به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند هنگامی که از دو گروه یک را دیدند یاران موسی گفتند ما در چنگال فرعونیان گرفته شدیم قال كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ مُوسَى كُنَيْنِ نيست پروردگار من با من است بزودی مرا هدایت خواهد کرد و به آن به موسا بحجه کردیم اصالیت را به در یادم در یاد هم شگافت شد به هر بخشی همچون کوه عظیمی بود و ازلتنا ثم الاخری و دیگران را و انجینا موسى و من معه اجمعی موسى و تمام کسانی را که با او بودند نجا تا ثم اغرقنا الاخرین تا پس دیگر امزا غر کردین این بی ذالک لآیه و ما كان اکثرهمون در در جریان نشانه ی روشنی برای اکثر آنها ایمان نیاوردند. فإِنَّ این لهو با پاپا گفت تو عزیز و رحیم است. و والنم آنها خبر ابراهیم را بخوان. قال لأبيه ما تعبدون. هنگامی که به پدرش و قومش گفت چه چیز را پرستش می کنید قالو نعبد اصماما لها عاكتی. گفتند بطهای را می و هم روز ملاسم عبادت آنانیم قال هم یسمعونكم از تدعون گفت آیا هنگامی که آنان را می صدای شما را میشنود شنود؟ یا سودی به شما می یا زیانی؟ كذلك گفتند فقط ما نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند قال أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ گفت آیا دیدید چیزی را که شما عبادت می کردید؟ اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ شما و پدران پیشین شما فَإِنَّهُمْ عَدُوبُونَ لِي إِلَّا رَبَّ همه آنها دشمن منند مگر پروردگار عالمیان الذی خلقنی فهو یهدین آن ذاتی که مرا آفرید و هدایت میکنند و الذی هو یطعمنی و يسقین و ذاتی که مرا قضا میدهد و سیراب مینمایَد و اذا مریضت فهو یشفیین به هنگامی که بیمار شدم مرا شفا می‌دهد. و الذی امیتونی ثم میحییم و ذات که مرا میمیراند و صفت زنده میکند و الذی اطمع این یغفی غلی خفیئتی یوم الدین و که امید دارم گناهانم را در روز جسا ببخشد رب به ابلی حکم و الحقنی بالصالح پوارگارا بمن عیل و دانش مرحمت فرما و مرا ملحق کن وجعل لي لسان صدقیم في الاخرین و من در ميان امت های آینده زبان سید خراب و, من و مرا مورت جنت و مراد بهشته پر نعمت کردند. و قبیل آن به پدرم را راویام که او از گمراهان بود. وَلَا تُخْزِنِي يوم يُبْعَثُونَ با مرا در روزی که مردم مبوس میشه باند شرم انتبه و رسوه مکن هم لا ينفع مالون ولا بگون دران روزی که مال با خرسندان تودی نمیبخشد اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر کسی که با قلب سلیم با پیشکاک خدا آفید و اذلفت الجننت للمتقین دران روز بهشت برای پرهیز کاران نصیف می شود و برزدت الجحیم لرغاوی و دوزخ برای گمراهان آشکار می کرد وقیل لهم اینما کنتم تعبدون و به آنها گفته می شود کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می کردید من دون الله هل ینصرونكم او ینتصرون معبودهای غیر از خدا آیا آنها شما را یاری می کنند یا کسی به یاری آنها می آزد فکرکبون فیها هم در این هنگام آن معبودان با آبدان و دو از افکلت می شبان این و همچنین دشکریان ابلیس عموماً آنها در آنجا به مخاسمه برمیخیزند و میگویند به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم چون شما را با پروردگار آدمیان برابر میشموستیم اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد افسوس که امروز شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد و نه دوست گرم و فر محبتی فلو أن لنا کروتا من المؤمنين. اگر باوری دیگر باز کرتیم اس مؤمنان خواهیم بود این وما کان اکثر مؤمنين در این موجرات آجت و ابرتیم ولی اکثر آنها مؤمن نبودند وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ ومسلمًا فر بعض دورتو عزيز ورحيمة كذبت قوم نوح من المرسلين قوم نور رسولان رو تكذيب كارتان إذ قال لهم أقوهم نوح ألا هنگامی که برادرشان نو و آنها کو آیا تقوا پیشنه می کنند من برای شما رسول امین هستم بتعطاع الله و الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید اما اسالكم من این من هیچ مزدی در برابر این دعوت از شما نمیخوام اجر من تنها بر پروردگار آویم یا بنابراین فت فت الله پیش و مرا افتاتنا موقعي گفتند آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی از است و پرهیزکار قال گفت من چه می‌دانم آنها چه کاری داشته إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون حساب أن حاطنها بفرع قلم أكتب شماعي فاميدي وما أنا بطارد المؤمنين ومن تركز مؤمنا إن أنا إلا نبي مبين من تنها انتظار رده آشکاری هستم قالوا ای نوح اگر خودداری نکنی باران خواهی شد قال رب قوم من مرا تکزید کردن پس تو در میان من و میان ایشان بگونه ی آشکار فیصله کن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند، نجات بده فَأَنْ جَيْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ پس ما و همراهان شراب در کشتی مملو از انسان و انباغ حیطانات نجات جاتی ثم اغرقنا بعد الباقی سپس بقیه را بعدن غرق صحبی این نفی ذالک لآیه و ما کان اکتر بیگمان در این اما اکتر ایشان مؤمن نبودند و این ربک لهو بیگمان تو عزیز و رحیم کذبت عاد المرسلين قوم عاد رسولا را تکذیب کردند اذ هنگامی که برادرشان هود گفت آیا تقوا نمی‌کنید ان ليكم من برای شما فرستاده امین هستم اتقوا الله واطيعون تكفوا و مرا اطاعت نماویدین اما اسالكم علني من اجل ان اجري الا على رب العالمين من هج اجر در برابر این دعوت از شما نمیتراوید اجر فادوشی من تنها بر پروردگار اثرونبی پلیری این آیت صوت بود آیا شما بر هر مکان مصففهه نشانه ای از روی هوا و حست می سازید؟ مصانع زیبا و با در تتخگوون مفری على اللب مستخرون و قصد و قلع ها زیباو و آنچنان که گویی در دنیا جاابت تا خواهیتمان؟ و اذا بقشتم بقشتم جبری به انگامی که کثیران مجازات می کنید همچون جباران کیف نمی دهی تتقوا الله و اطیون تقبایل علاقی پیش کنید و مرا اطاعت نمایید و تتقوللی امدد کن بما تعلّه از خدایی بپرهیزید که شما را به نعمتهایی که میدانی امداد کردن امد شما را به چهار پا جند و نیست سران لکفت و امداد امداز کردن همچنین به بابها و چشمها اگر کفر کنی من بر شما از عصاب روح فساد میتصب قالوا سواء علينا او عزت ام لم تكن من الواعظين آنها گفتند برای ما سپاس نمی کند که ما را اندرد بدهی یا ندهی. این این همان روش و اخلاق پیشینیان و ما نحنو و ما هرگیز مجازات نخواهیم شد کذبوا فاهلكناهم ان في ذلك لاایه وما كانوا مؤمنین آنها <تصفيق> خود را تکذیب کردند ما هم نابودشان کردیم ایم با در این آوغا با نشانه برای آگاهان برای اکثر انسا مؤمن نبودند وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الْرَحِيمُ بَعْتِيكُمَنْ فَرْبَعَتْ قَوْرِتُوْا عَتِيْتُوْا تَحِيمُ كَذَّبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ قَوْمِ السَّمُودُ رَسُولًا رَوْتَكْزِيدَ كَفْتَ إِذْ قَالَ لهم أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ هنگامی که سالی با آنها گفت آیا تقوی پیش نمی کنید اینی لکم رسول امین من برای شما فرساوی امین شد سم الله و اطیعوه تقوی الافی پیش کنید و مرا اطاعت نمکین وما اسألكم علیه من اجل إن أجري إلا على رب من عجر و پاداشی در برابر این تعبت از شما نمی اجر من تنها بر پرواتگاه آدم یا آیا شما تصور می کنید همیشه در نهایت امنیت در نعمت هایی که اینجا میمانید؟ ایدند نات این ها و چشمها ها و نخل ها یکی کمی به ها و ی من شما اسکوها خان ها میتراشید بتر با آن باعث نوش میکرد تیف. الله و از خدا بترسید و مراد اطاعت کنید. آلات اطیار امو المسرفین. با اطاعت ثرمان مصرف نکنید. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون همان که در زمین فساد میکنند و اصلاح نمیکنند. کنند قارو انت من گفتند ای صاد تو عقل خود را از دست دادی ما انت إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَقَدْ بَشَّرَكَ هَٰذَا مَا حَفِظْتَ ۖ أَغْرَاقٌ مِكْوِيٌّ أَوْ كَثِيرٌ مِنَ الشَّامِئِ بِيَوْمٍ قَالَ آتِ گفت این ناقیه ای که برای او سهمی از آب است و برای شما سهم در روز معین. ولا تمسوها بزوئن، فيأخذكم کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روز عظیم شما را فرو کرد. گرفت سرانجام بر او را از پای در افتاد. سپس از به خود و شیمان شدند. فأخذهم العذاب ان في ذلك لاایه وما كان اكثرهم مؤمنین. عذاب الهی آنها را سر گرفت در این آیات به ولی اکثر آنها مؤمن نبودند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وحفی کمان پر بارتگار تو عزیز وحفیم تذبت قوم لوتن المرسلین قوم لوت فرستادگان را سفزید کردن از لهم اقوهم لوتن الا که برادرشان لوت به گفت، آیا تقبا في شن نمی‌کنید ان لیکم رسول امین من برای شما رسول امین هستم فتقوا الله و اطیعون پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت ماوین من اسالکم علیه من اجل من از شما اجر نمیخوام اجر من فقط به پروردگار آدمیان آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنت زکون می روید؟ وتذرون ما قلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون با همسران راو که خدا برای شما آفریتا زفا میکنید شما قوم تجاوزگری هستید قالوا لئن لم تن تهیانوک لتکونن من المفرجید گفتند ایلون اگر از این سکنان خودداری نکنی از اخراج شبندتان خواهی بود قال این می من القانون گفت من به هر حال دشمن اعمال شما بستم قب نجمی و اهلی مما یعملون پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام میدهند دهند رهایی بخش و اهله پس ما او و خاندانش را همگی نجات دادیم جز پیر زنی که در میان آن گروه باقی ماند ثم دمرنا الاخرین سپس دیگرم را حلاف <تصفح> کردیم و امقضنا علیم این مطر فساء مطغ الهندرین با <تصفح> بارانی اصان بر رو پر ساویی چه بارانی بدی بود این بارانی انتا شده إن في ذلك لآية وما كان أتقونه مؤمنين. بريء أو أكثر أنها إيمان نجابت. وإن ربك له العزيز الرحيم. ومستلما فرباه كارتو عفيس وفسيما. کذب أصحاب الأنكى رسولان را تصدیق کردن. قال لهم انگامی که شوایب با انها گفت، آیا تقبا پیش نمیکنید؟ من برای شما رسول آمین هستم. فاقوپس تقوای الهی پیشه و مرا اطاعت نمایید ما علیه من ان اجری الا علی رب العلمن من در برابر این دعوت پاداش از شما نمیطلبم اجر من تنها بر پروردگار آدمیان أوقوا الكيل ولا تكونوا من المسرن حق را ادا کنید و مردم را به خسارت نیفكنید وزنوا بالقسطات المستقن با ترازوی صحیح وزن كنید ولا تبقسوا الناس أشاءهم ولا تعتوا ف الأرض به حق مردم را کم نکو دارید در دستمین بساد ننموکید واتقوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِدِلَّةَ الْأَوَّلِينَ از سادی که شما به اقوام پیشین را آخرید بپرهیسید قالوا <تصفح> اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْعَرِينَ گفتند تو فقط از جادو شدگان و ما انت الا بشرم مثلنا و انه هنو کلنن به علاوه تو تنها بشر مثل ما هست تنها حاکمانی که در باره تو داریم این است که در می باشی فَأَسْتِقُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَائِ اِن كُنْتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ اگر راست میگویی سنگهاگی از آسمان سر ما سروری بیست قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ گفت بر برگار من و اعمال که شما انجام میدهید ألقى طرح تكذبوا فاقدهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم العقب ترجم اورا تكسي كاردان بعضاب رؤس ابرساو كان الخارصرو غريب كين اعصاب رؤس بزركي ان في ذلك لا وما كان اثرهم مؤمنين مسلما در اين موجرا اوكث بنشميس الخ ربك له هو العزيز الرحيم بعثيكم هر بات قوثو عظيم باسيما وَإِنَّهُ اینه رَبِّ الْعَالَمِينَ العالم با ایمان اسوع فرمان کار چهونیان نزل دیروز روح الأمی روح الأمی امر نوکش فرا علی قلب تو تو را انصاغ. يريدان النار ذو مبين. انظر بطبان عرفي آج کا ناقل کا. واننه لفي توصیف ان در کتب أو لم يكن لهم آية أن يعلموه لما هو بني إسرائيل؟ أيا من نشان براعي أنفاقه فينيف، كأولماعي بني إسرائيل بخبيء أن أرقاهن؟ ولو نزلناه على بعض الأعدمين. حرکا ما آن را بر بعضی از عجم نوزل میکردید فقرأهو علیه اما کارو به مؤمنین با او آن را بر ایشان میخان و آن ایمان ننیابتان کذالک تلکناهو فی قلوب المجرمین آری این کونکو آن را در تلخوج المجرمان باورت میکرد لا يؤمنون بني حتى آنها به آن ایمان نمی آبرند تا عذاب دردناک را لا با چشم خود بیدیدند ناکه خانم عذاب الافی بسراغ آنها می آگید در حالی که توجه ندارند فیقولو هل نحنمون غورون بعد در این بانکان آیا داده خواهد شد؟ افد عذابینا آیا برای اطراف ما عجل می کنند؟ افر این امت علاهم اگر ما ساد یان دیگری آنها را سین سندکی بحرمان سازیم ثم جاءهم ما نوادونسپس عذابی که به آنها بعد داده شده به سراغشان بیاید ما این عنهما تمتع و بهرگیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت وما أهلكنا من قوة إلا لها من ذل ما هو الشارب الجاريره حالك نكرين مكثين كانتكاو خن انتكاوني براءك من خاو بوت ذكرا ونذلنا غول توم تذكر شبان وما حكز تتمكنت نبودي وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ شَيْئًا وَجَنًَّا إِلَّا أُذِنَ لَهَا نَافِخَةٌ فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا صَيْحَةً وَاحِدَةً وَأَذِنَ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ بَلْ رَأَيْتَ أَنَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ النَّارِ إِنَّهُمْ عَنِ السمع با شنیدن اخبار افمان خواه با کنه او را فلا تدعو مع الله ایلاء آخر فتكونن المعزدین تفهیش مخان که خواهی بود وانزل عشیرتك الاغره خیش و بندان نسی باقب جناح که و باولو خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند، بگوست. فَإِنَّ أَوْلَكَ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اگر آنان آنها تو کنند، بگو از خور شما و توکل علی العزیز و رحیم و بر خرابند الذي يراك حين توکل نما همان که ترا به که برای عبادت برمیخلیسی میبیند و تقلبک بالسجدید و حرکت ترا در میان سجد کنندگان مشاهده میکنند این نه و استنیالان. بی کمایی از خداوگی شنپاوه. بحث آنها. هل قنبوکم علیم تنزل الشیاطین. آیا با شما خبر بدهم شیاطین با کسی نازل می شوان؟ تنزل على علیم كل آفات آین. بر هر درغگوی گنهکار ناصل میکردند آنها آنچه را میشنوند به دیگران القا کنند و اکثر شان درغگو هستند پیامبر شاعر نیست شعرا کسانی هستند که از اسکانن قیدتی میکنم الم تر آیا نمی نمیبینی آنها در هر وادی سرگردانند وان لو ما بس سخنانی که عمل نمیکنند یلَلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ تَيْرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَمُوا أَيَمُ قَلِبٍ يَقْلِبٍ مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل و یاد خدا بسیار میکنند و به هنگامی که مورد ستم باقی میشوند و دفاع از خیشتن به مؤمنان برمیخیزند و از توق شعری خود کمک میگیرند